برخی مفسران و تحلیلگران معتقدند جامعه ایرانی جامعه عرفان زده است اما این اتش اجتماعی را چگونه میتوان سیراب کرد آیا عرفان اسلامی راهی است برای پاسخ به این آتش یا این عرفان نیز ریشه در تصوف دارد و نمیتواند سالکان و مشتاقان را به حقیقت برساند خاطر این که محل تولد من شمار تکابه که اون روستها کرد و ترک مخلوط سونیا و شایخ قادری و مشایخ نخشبندی به اون منطقه زمستان ها رفت تا آمد داشتن منو برد دستم گرفت یکی از مشایخ اونجا و به او گفت که من آوردم به این دعا ایشون گفت چه دعایی؟ گفت دعای علم میخوام درش این یکی از ابتکارات پدر بزرگم بود ایشون به این فکر افتاد من ثواد خانده رو نوشتن پیدا کنم دعا به سنم سنده کم بود هفت سال هشت سال داشتم مخصوصا خانمهای جوانینا از من دیگه خجالت نمی کشیدن بیامدن قشم بینشستن دوای محبت می دعای بچه می گرفتن، دعای سلامتی بچهشون رو این روحانیونی که از زنجان می اونجا برای تبلیغ، سرزنده بودن من دیدن، گفتن این برای درس خواندن خوبه. ولی فقیرنی چی ندارن؟ شما جمع بشید، کمک بکنید، این بیره حوزه درس بخونه. بین پونزده و شنزده مهمم شدن. از دانشگاه تهران فلسفه اسلامی. لسانس گرفتم ما جراجویی را ببین با این چشم زعیف به سربازیم رفتن دقیق نفرس. مثلا یک سال پیش تحویل دادم این قرآن را به ارشاد این آقایان دادند یه دیزهار نظر کردن یک سال معتل کردن کلبت من هیچ چی تغییر ندادم من حدود سه سال روش کار کردم یک سال هم اعتبارمند سال گذشت از این بهارم در آمده از زمستان گذشته در دست مردمی و اینم پخش کردن مجانی پخش کردن منم حق تعلیف نگرفتم الانم من یک ساعت تدریس در کل مراکز تهران و شهرستان ها ندارم و در این ده سالی که بازنش از شدم یا نه سال یک رساله قبول نکردم یک پایان نامه لیسانس چیز فوق لیسانس یا دکتری احتیاجم دارم. ولی نکردم این کار را اخلاقم نیست. زررم کردم. ماهی الان من این کارها را که اینا میکنن بکنم ماهی 15 میلیون 10 میلیون اضافه در میارم. ولی خس خیلی این گذاشتم. زندگی ولی از اونها عقب‌تر نیست. الان شما خونه هر کدومشون بیری به رفاه من نیستم من یه خونه اینجا دارم، یه ویلا در رامسر دارم. یه جایم در ترکیه برام جور کردن که گاهی میرم اونجا خیلی عیانی میمانم. خب این الان کدام ایک آقیان دارن؟ شب تاش گروهن؟ بلی زربه زدن به آموزش اسم الله الرحمن الرحیم مفسر قرآن متفکر مسلمان و منتقد جسور عصر ما جناب آهی دکتر سید یهیا یسروی جنوبالی در یک دهه گذشته از منتقدان سرسخت ارفانهای منحرف از ذات حق بودید. نسبت به عرفان در جامعه ایران هشدار دادید. آموزه‌های صوفیانه و درویشانه را نقد کردید و آرای شما در کتابها و مقالات و سخنرانی‌های پرشمار آمدید. در این حال شما منتقد به یک عرفان حقیقی نیست هستید قبل از اینکه بخوام ورود کنم به بحث اینکه معنا و مبنای عرفان حقیقی چیه آیا شما فکر می‌کنید در جامعه امروز ایران خرافه‌گیری بر عقل‌گرایی تفوق پیدا کرده که این چنین نسبت به عرفان هشدار میدید بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت دوستان و بینندگان محترم شما بله من معتقدم ما با اینکه دین من عقلانیست در میان ادیانی که امروز در جهان هستند من با گذشته کاری ندارم مثل یهودو نصارا و هندیان و اینا در میان همه ادیان تنها دینی که متن اصلیش که قران کریمه بر تأقل تأکید میکنه دین اسلام ولی ما پس از مطالعه و دقت به این نقشه رسیدم که ما در جامعه خودمان به قدر کافی به ترویج اقلانیت نپرداختیم و جامعه تا حدودی خرافی شده است و به همین دلیل نمیدونم دارید یا ندارید یک کتابی منتشر کردم به نام فلسفه خرافات امیرکبیر کبیر چاب کرد و من اونجا ریشه خرافات را ترجیح تحلیل کردم که مردم بدانن خرافات اصلا چیه و بعد علت علاقه مردم به خرافات را توضیح دادم و علت ماندگاری خرافات را در میان مردم حتی در کشورهای پیشرفته باز می بینیم اکثریتی دارای ذهن خرافی هست اینا رو تا حدودی توضیح دادم من معتقدم باز عرض می این نظر نظر منه و ممکنه خیلی با نظر من مخالف باشه من معتقدم ما باید یه مقدار بر علیه خرافه فعالیت کنیم و مقدار بیشتری بر اندیشه و عقلانیت تأکید ورزیم منشه خرافات سادگی ذهن انسانه که می‌خواهد خواهد حوادث جهان را تفسیر کنه ولی فهم دقیق و علمی ندارد اینا را نسبت میده به جادوگری و اینجور چیزها بود فلا. اما از منشه خرافات که بگذریم عرفان را نمیشه گفت خرافی اصلش اه. اما اذهان خرافی آمادگی زیادی دارند که یک عده از عرفان به عنوان ابزار استفاده کرده اه. و از اونها بهره کشی کنند یعنی اونها را مرید خود کنند و خلاصه وعده دیدار بدهم و اینا برای با جازوه هایی که دارد فریب بدهم 99 درصد در عرفان در زمینه برای دروغ آماده است تا حقیقت مولوی که خودش عارفه و طرفدار ارفانه و از ستونهای ارفانه مولوی میگه از هزاران زانمیان یک صوفی هند. ما وقی در دولت او میزیم از هزاران یه دونه صوفی هست چارس قرن پیش از مولوی هم داد زدن پنج قرن پیش از بد به پیدایش اگر بحث ما فرصت داشته باشه من دو... بگم برفان دروغین چیه خانی میخوام یک نکته بگم شما یک ای در 3896 داشتید در این مصاحبه میفرمایید ایران اینقدر در حال و هوایی ارفانی نیست و کفی اقلانیت سنگینتر است الان برخلاص این نظر رو دارید ایران, ایران از نظر فرهنگش سابقهش مثلا زیاد مثل هندیا قرق در ارفان نیستن مثل مسیحیت مثل روم ولی الان فرمون دید مسیحیت. که ولی به ما و ما, رو ما نکردیم. در دین اسلام هم با اقلانیت شروع کردیم فرقه هایی هم که پیدا شدن فرقه های اقلگرا بودن مذاهب اقلگرا بودن مثل معتزله مثل شیعه اینا اقلگرا بودن ولی از قرن پنجم ششم به بعد یواش یواش موجی آمد بر علیه اقلانیت ایلال و انگیزه زیادی داشت شاید یکی از اونا این بود که متون یونانینا را ترجمه کرده بودن متهم شدن بحث های اقلانی متهم شد به وارداتی بودن این اقلانیت بالاخره بود دیگه ما قبل از ترجمه یونان ما مکتب هامون اقلانی بود شیعه اقلانی بود اسلام اقلانی بود در اسلام در متن قرآن یه آیه پیدا نمی کنی، عقل را تأخیر کنه تمام آیه های مربوط به عقل, عقل در ستایش عقله و تمام ها نسبت به مردم به خاطر این است که لا یعقلون یعنی عقل خود را به کار نمیبرند آیه ای داره متنش حفظ نیستن از اونایی که به دوزخ میبرندشون از اون مردم دوزخیار میپرسن ما سلک کنفیس اقر شما چرا... چی چیز شما را کشانید به جهنم گفتن اگر ما عقل من را به کار می بردیم می شنیدیم می حرف را تجزیه و تحلیل می کردیم قبول می کردیم راه ما به اینجا نمی یعنی باید اقل... این نتیجه رو بگیم عقل و در مدبر می شونیم اصلا ایرفان جز این نیست از اول میگه به قول حافظ قشنگ گفتد در راه منزل لیلا که خطرهاست در آن شرط اول قدم آن است که مجمون باشید یعنی جنون فلسطنی ارفان این اعتقاد رو ندارید چرا چرا قیل... ببینید ارفان رو برامده از اسلام میدونید و میار اسلام نه. رو ببنید. قرآن می‌دونید و قرآن ببنید. هم میار عقل مثلا دو چیزه یکی این که آیا ارفان مکتبیست برخلاف عقل یا عقل گوریست؟ بله از اول میگن جستجو یه حقیقت دو راه دارد یکی عقل یکی ریاضت یکی ده میگن بیا گروسنگی نگی بی بیکشتشنگی به بی چیزی میرسی یکی ده میگن نه عقل و منطق و فهمت را به کار ببر به چیزی میرسی این دنبال فهمه اون دنبال وصول حقیقت اما یه مسئله دیگر اینی که این ارفان با این ویژگیش آیا ریشه در اسلام داره؟ این یه سواله. من زمانی که فلسفه عرفان را می نوشتم خودم جدن در این مسیر بودم یعنی آرایتون الان دیگرگون شده بله من از حدود هفتاد و سه و و اینا چند سال میشه الان؟ فلسفه ارفان شما 65 نوشتید 72 ارفان نظری نوشتید 72 ارفان نظری به عنوان آموزش محتوای ارفانه فلسفه ارفان دفاع از ارفانه فرق دارن اینجا من خواستم ارفان را معرفی کنم ای آقا کسی که میخواد ببینه ارفان چیه بیاد ببینه ای آ... به اینا معتقدن وحدت وجود ریاضت چی و چه اما در فلسفه ایلیفان تحریک میکنم میخوام دفاع کنم من از اون دیدیا حدول کردم چرا اینی که با من آمدن مذاکره کردند که من شرحی بر فسوس و حکم بنویسم استاد محمد عقی جعفری خدا بیامرز که خودش مشغول مصنبی بود بارها به من توصیه کرد که تو البته حرف ایشون من خودم بر این عقیده نیستم زبان تو راحت تره, تره مردم بهتر میکنن تو بیا این گرشن راز را گرشن راز شبستری جان. هم مونه هم ولایتیمونه بیا تو این را شرح کن من نشد فرصت نشد گرفتاری این ور اون ور به کارهای دیگر مشغول بودم تا اینکه یه روز آمدن به من گفتن که شما برای ما فسوس الهکم ابن عربی را شرح کن. این چند جلد میشه؟ گفتم برای من به قصد مشتری نگاه نکردم ولی این بستگی دارد که من تصمیم بگیرم نقل و قول زیاد بکنم توضیح بیشتر بدهم مثلا هم عبرعبی بیارم هم ترجمه کنم خوب این فرق میکنه یا مثلا همه چیز را به فارسی بیارم این بسته به سلیقه شماست بین چهار پنج تا در نظر بگیرید هشت و ده جور میشه. و حتی شاید ده من خیلی زوق کردم به شبسترین اینقدر مایل نبودم خیلی زوق کردم که فسوت و را تفسیر کنم و دفاع کنم و توضیح بدهم و اون شتیات و اینا رو یه مقدار توجیح کنم در این گیرودار یه جریاناتی برام پیش آمد که من از این مسیر برگشتم یعنی ادول کردید از این نظرات پبلی یه جریانی در یه سفر مشهدی یه حوادثی برام پیش آمد دنبال اون یه حادثه با یکی از دوستانم شو از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی پیش آمد بالاخره نمیخوام رو بگم و خوبم نیست بگم حالا برای اینکه این در تاریخ این تفکر بمونه, نه بمونه نه من نوشتم ب... در جایی که لازم نمیوشتم ولی اینجور نه نه من ندیدم میگم زیاد جزئیات نگیرید چون کتاب تو هر حال یه چطور من, ب... من الان عرض میکنم لازمه در... که به اون نظر بعدی خودم رو الان در یک کتاب دیگر نوشتم به نام فریب سراب این انشاءالله امروز از شاف در میاد گم چاپ میکنه احتمالا بوستان کتاب قوم یای محسیدگر اونجا آمدن از من بردن یعنی بردن چاپ کنند اینجا من نظرم نظر مرحوم اللامه تبا تباییه مرحوم شهید متحریه نظرم نظر ایناست و هم فکر مرحوم ست جلال الدین هستم اما بعدها من میگید به علام جفری نه شد که میگه ارفان رو زوقی میدونه نباید زیاد جدیش گیره نه ایشون اصلا ایشون نمیشه گفت عارفی ایشون گفت بابا این هم از شعر دیگه اینا که مثلا یک جو نمیگم برگشتم اولین کاری که کردم دیدم خیلی جا افتاده که عرفان این اسلامه و حتی بعضی از عرفان را مثل غزالی عین تصوف را عین اسلام میدانند میگن اصلا یک کلمه نمیشه کم و کرد اصلا تصوف اسلام تمام در شیعه هم یکی مثل مرحوم سید هیدر عاملی هیدر عاملی. سید هیدر اینم میاد عرفان را با تشیع یکی میکنه بر اینا داوریه به نظر من من نظره دیگر به طرز میکنم من اشتباه کنم و صد نفر برخلاف من نظر برد. بدن من به نظر اونام احترام قائلم. ولی اینی که من رسیدم به عنوان یک کارشناس و محقق بعد من آمدم اولین کاری که کردم یک کتاب نوشتم پجوهشی در نسبت دین و عرفان و این کتاب را الان فکر نکنم شما داشته باشید. این کتاب به وسیله محسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی مال آقای رشادینا اونا چاپ کردن چندین چاپ هم خورده پجوهشی در نسبت دین و ارفان فقط تلاشم این نیست که ارفان را رد کنم تلاشم اینه که بگم ارفان یک چیزیه دین مقدس اسلام اونجا که من ترمیده از دین مکتب دیگریه دوستم بله، باشید. این یکی نیست. من عرض بنده من. اینه که شما به علامه جعفری شون استناد کردید میخوام بگم که علامه جعفری توی کتاب ارفان اسلامیش اتفاقاً بر خلاف نظر شما عرفان رو از معارف در اون دینی میدونه و قائل به این هستش که ما عرفانمون با صوفیگری و ارفایی مثل هلاج مثل با یزید بستامی و اینها متفاوته اونها هلاج کوس انالحق میزده با یزید خودش رو ستایش میکرده میگه پاک باد وجود من من چه بلند مرتبه هم به جای اینکه خدا رو ستایش بکنه در اینجا موزه عرفان اسلامی رو علامه جعفری از موزه تصوف جدا میکنه ولی خوب. در تحلیلی که شما میفرمایید میخوام بگم اون نقل قولی که از علامه جعفری فرمودید جایی دیگه‌ای از شما منتشر شده با متن آثار علامه جعفری نمیخواد اجازه بدید من اینا رو خود علامه جعفری خدا بیامرزه یه جور با من صمیمی بود این را خصوصی صحبت می کردیم می گفت و جالبی که بعضی از آقایان دوستان گفتن که ایشون مریضه بریم بپرسیم یه روز توری رفتیم که بعد از نماز مغرب و ایشا خونه ایشون باشیم تا همون کتاب حالشو پرسیم من رفتم دیدم ایشون با من فارسی حرف زد هر وقت منو می گل از گلش می گفت شروع میکرد ترکی حرف زدن بعد من با همون حالت یه مقدار شک کردم در بیماریشون و یه تقریبا یه ماه بعد از اونم فوت کردم. این خصوصی بحث صحبتای خصوصی من بود. میگفت آقا اینا رو چی تی نگیری می‌ندازی؟ این البته اینم من قبول ندارم. من با ایشون خوب خیلی جاه دارم به ایشون. از جمله اینکه مثلا ایشون میگن ارفان ما با ارفان حلاج فرق داره و ارفان ابن عربی فرق داره خونه بر برش مبنا میگه یا اگر میخواد بگی تصوف با عرفان فرق داره کدام عارفه بگی من صوفی نیستم اگر اجازه بدید به این در مورد اشکالاتی که به این نظر یا <تصفح> <تصفح> <اصلا> کدام <شما> صوفیست که <تصفح> من عارف نیستم ولی میخوام بگم شما از سال 75 که میفرمایید از فلسفه عرفان از این کتابتون فاصله گرفتید سال 88 به کتاب عرفان عملی رسید و این کتاب رو منتشر میکنید در ارفان عملی شما قائل به این هستید که دیگه مثل فلسفه عرفان قائل به نیستید که اسلام ارفان برامده از اسلامه بله. در اینجا قائل به این هستید که عرفان ریشش از ادیان هندی هند و یونان و چیز نو افلاتونیان شامات شامات مسیحی بودن و افلاتونیان که مرده بودن ولی تعالیمشان ادغام شده بود با مسیحیت که الان هم هست بله. عرفان نو افلاطونی در جلد مسیحیت ارزه میشه یه ده مسلمان شدن از این طرف شامات اونا این افل... ارفان مسیحی را آوردن یه از طرف خراسان که هندی بودن پیرو مکتب های هندی بودند. مسلمان شدند، اونا, اونا هم دینا آوردند، و در فرن دوبون، بله. اینجا اینو مثال میزنید درقرن دوبون سیدونید ا... یواش دوبان. یواش پیدا شد، و امام صادق علیه السلام که این پیدایش معاصر بود با ردیه دارند بر صوفیه، کلی حساس بودند، بله. چون قبلا زیاد جدی نبود، مثلا 20 سال پیش، سی سال پیش، دیگه اون سال صد و نه. دیگه رسمند جدی می شود و اینجا این شما می که عرفا بهتر بیان اجتماعی کنند و بشه یک نوعی خدمات متقابل عرفان جامعه شکل بگیره و عرفا در صحنه جامعه بیان برد. اینجا هنوز شما از عرفان دارید دفاع میکن من هرگیز نمیگم عرفان دروغه این هم برویش ها و عرفا بشنبن هم غیر عارفان بشنوند به مطلبه کردید گفتید در این اجازه بیدیم اجازه بیدیم چرا؟ چون من یسروی کائنات در دست من نیست من مثلا حکمای قدیم نیستم که بگم ذهن فیلسوف کل جهان میشه نه هیچ یک میلیاردم سهله یک میلیاردم بتوانه یک میلیاردم جهانم در ذهن من نیز، پس چجور من میتونم بگم عرفان دروغه ارفان یه راهه پیشنهاد کردن غیر از عقل راه ریاضت که شما ریاضت بکش به حقیقت برسیم میکشی رسیدی نبارکته یعنی تجربه نرست... عرفانی یعنی رو نمیشه یعنی هیچ تجربه را نمیشه بیان که شما یه عطری را استشمام کردی، الان به من نمیتونه اونو منتقل کنیم درسته مگر این که من خودم برم همون عطر را که شما گرفتی زدی به سر و صورت لباسه من همون عطر استفاده کنم بیره دماغم بنابر این عرفان را من نمیگم نیست نمیگم دروغه و نمیگم هم هست میگم آقا یه مکتبیه برای خود قواعدی داره ریاضت بکش شاید رسیدی پسر من باره ها گفتم الان بیاد بگه بابا سلام میگم علیکم سلام اجازه میدی میگم بفرما بگه بابا من میخوام درویش بشم آرف بشم میگم بشو ولی پسرم عرفان سخت ها عشق زان رو عشق زان رو سرکش و خونی بود تا گوریزد هردیون بود. بود ما حالا میخویم بحث متدولوژی کنیم اهل ریاضت هستی مبارک دی. من نمیگم نرو ولی پسرم بدون ریاضت با سیر گذاشتم دو تا شعر حافظ خندن آدم عارف نمیشه دوستم. یا پای درس اصفار نشستن آدم عارف دوستم. نمیشه پس عرفان را من نفی مطلق نمیکنم عرفان را میگم غیر از دین یک و دوم عرفان به دو صورت دروغه یکی اینکه یه آدمی که هیچ اهل ریاضت نیست با درس دادن ادعا کنه من عارفم من چند مدت اصفار چیز خصوص درس دادم مصنوی درس دادم با اینا ادعا کنن من عارف هم شاگردان من بگن خیال کنن اونم شدن عارف این دروغه ارفان بی سلوک دروغه هر که باشه این که دروغ دروغ دیگر اینکه که یه نفر خودش میدونه اهلش نیست ولی دریب تخته خورده شده قطب این خودش خودشون میزنه با عالم عرفان دروغه کی به مردم را فرق میده این هم دروغه هم عرفان دروغی هست که طرف خودش هم ممکنه نداند الان ما داریم من میشناسم افرادی را که با درس دادن خیال میکنن عارف شدند درست که هیچ ذره بوی از ارفان نبوردن فقط خصوص را بلدند اما قسم دومش هم در جامعه از جوانان ما باید پشگار باشند همین تاهری را من نامه نوشتم نامه سرگوشانه نوشتم 15 سال پیش آقا که این جور که آقا پیش میده این جوانان خوش قلب را فریب میده من میبینم نو شاگردا می اومدن چون منم بالاخره معروفم به این که اهل عرفانم حالا یا استاد عرفانم یا خودمم اهل عرفانم یه زمانی خودم اهل خانقاهای نام بودم اما به هر حال میان پیش من هم زن هم مرد از اینا که میرفتم من میدیدم برهواس این حتی این حتی کتاب‌هاشو یه آقای دیگر نوشته همونی که مقدمه مینویسه کتابا رو منم موضوع بس نقد طاهری نیست نقد نه منم اینه که من از این از دو ارفان, ارفان عملی و سال 65 به سال 88 که شما وقتی کتاب ارفان عملی رو مینویسید میفرمایید ارفان اسلامی کامنتر از دیگر ارفان هاست حتی یه گفتگویی دارید اینجا من متنشو دارم مال سال 83 یعنی بعد این از اینا رو من توضیح میدم آره ببینید اینجا میفرمایید شما من آخه نه شما وقتی اونجا باید مستند کنید که من میدونم چی گفتم دیگه من قبول نکنم شما میفرمایید زبان عرفان زبانی است که نمیشه تجربه عرفانی رو انتقال داد میفرمایید از ده 70 تا به این رسیدید که درسته. زبان عرفان زبان نیست که به هر حال درسته. برای دیگری هم حجت نیست اگر درسته. کسی ریاضت کشید به جایی رسید مال خودش این نمیتونه بره درسته. حتی جایی گفتید نبی حق تبلیغ داره درسته. عارف حق تبلیغ نداره, نداره. پس چطور سال 88 در این کتاب شما میاید میگید ما باید عرفان رو اجتماعی کنیم مصاحبه می کنید با دفتر تدمیم کتابیتون تمام شد شما بفرماید بله مساهبه می با دفتر کتب درسی میفرمایید که اصلا ما باید نیرزا جواد ملیکی رو تبلیغ کنیم اونها خالص گفتن توصیه می کنید به جوانها برید استاد خوب پیدا بکنید مرتبا نمونه هایی از عرفان اسلامی میارید میگید این عرفان اسلامی فن است که ما باید اینو در جامعه ترویج کنیم اگر قابل انتقال نیست برای چی ترویجش کنیم؟ ما منطقی نشویم پارادوکسینه اخو این ای ای پس ببین یکی این که من وقتی قابل بیان نیست چجور بیان میکنم درسته اینه تنها من بیان نمیکنم من حتی نوشتم با اینکه اورفا گفتن قابل بیان نیست کمتر از دیگران حرف نزدند من هم مثل مولایی منم مثل دیگران اما این بیان انتقال تجربه عرفانی نیست با زبان کنایه ما فنا را مستی میگیم توجه فرمودید فنا قابل انتقال نیست اون تجربهش حتی فنا کلمه فنا قابل در... ارزیابی هم نیست آخه وقتی چیزی را من درک نمی کنم چطور ارزیابی کنم پس چرا در مصاحبه میفرمایید ما باید بریم ارزیابی کنیم که سعدی حافظ در عرفان چه به دست آوردن بعد رو جونشون کن آخه من کجا اینو گفتم بریم ببینیم چه به دست آوردن شما اونو من نشامل یه چیز دیگر گفتم اما تا شما اونو پیدا کنید من اینی میگم من هم مست دیگران بحث کردم از قضا یکی از چیزایی که عرفان را به دروغ بودن کشانده همین بحثی کردنه <تصفح> چون بحثی شده من فکر کردم چون دیگه مسلطم بر بحث‌های عرفانی عارفان اصلاح این نیست، ایرفان استن بحثی نیست, نیست. حدیث عشق در دفتر نیاید نی و نباشد بله. بس بنابراین اینو توجه فرمودید وقتی میگم ایرفان قابل انتقال نیست و منافاتی با این ندارد که بحث کردن مولوی میگه هرچی گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجر باشم از آن ولی ولی نه نه نرو حالا اینه نه, نه اینا هم مولویو که گفتید بل. مولویو بگم خدمت شما اشاره کردید گفتید ما باید بریم ببینیم سعدی حافظ ابن عربی همه را باید بررسی کنیم که آیا آنها به حقیقتی رسیدن یا نرسیدن شما که میفرمایید ابزار سنجش در عرفان نداریم به عرفان کشف و قابل بررسی نیست اولاً اون جمله منو بخوام ببینم چی گفتن بفهمم شما, شما من نمیتونم بخونم شما بخونید بله کردم خدمت قبول دارم بخانید. شما فرمودید که سعدی حافظ مولانا و ابن عربی همه را باید بررسی کرد که آیا رسیدن یا نه حالا اینا خب نه بدتره من شما بحث, بحث شما این میرید خب حالا سوال و به شما میکنن اشکار رو منتقدون به شما میکنن که نظریات شما در بابه عرفان پارادوکسیکالی شاید اون تلاطم عرفانی که در خود شما هست آرایتون هم انتقال پیدا کرد این آرا پرنسان شده یه جا میفرمایید بگم تمومششون بفرمایید. یه جا میفرمایید که تجربه قابل انتقال نیست اما در کتاب بله اما در کتاب عرفان عملی میفرمایید نه بریم عرفان اجتماعی کن. یه جا اشکال میکنن به شما که میفرمایید که عرفان قابل سنجش نیست خودتون بارها میگید بریم ببینیم مولوی به چی رسیده سعدی به چی رسیده حافظ به چی رسیده خوب اگر قابل سنجیش نیست چرا باید با چه ابزاری با چه مکانیزمی باید اونها رسنجید خب تمام شد به من دید و در مورد آخر اون چیزی که در بین فاصله این دو کتاب یعنی در دعه شهست و در ده هشتاد وجود داره به نظر میرسه بیشتر ناشی از تجربیات شخصی شماست و یعنی شما سال شهست و پنک میتونه برید از ره تحقیق بفهمید روشه ارفان بدیان هندی میرسه یا نه؟ بله خب درسته بل. چشم اما اونی که من الان گفتم دو جوره. چه گفتم دو جوره؟ الان میگفتی ها؟ کدومو؟ میگفتیم بررسی کنیم غیر قابل در بررسی در نیست درسته. درسته. درسته غیر قابل بررسی نیست درسته؟ خیلی قابل بررسی نیست یعنی الان من ادعا کنم پیش مریدانم من دیشب معراج رفتم هیچ میلاکی ندارن بدونن راست میگم یا دروغ میگم درسته این یک مسئله است پس این ایراد نداره که داره بفرمایید ببینید عرفان قابل بررسی نیست و به خاطر همینم میشه ادعا کرد اینو من گفتم بله. من میگم بله. بله الان صدها شیخ ادعا میکنن ما واسط به حق شده ایم ما از کجا میدونیم راست میگن درست. هیچ قابل بررسی نیست ببینید اما دومیش که گفتم ببینید بررسی کنیم اگر اون جمله را از اول تا آخر بخونم میدونم چی گفتم ولی الان شما فقط یه تیکشو بگید من شاید اینو گفتم ببین ما با ما اهل فن با بررسی بیانات افراد توانند بفهمند اینا چیزی چشیدن یا نچشیدن نشش... اونم اون نه هرکس توجه فرمودید یعنی من وقتی که من وقتی که در حافظ میخوانم دوش لعلش اشوه ای میداد حافظ را ولی من آنم. کذوه‌ی این افسانه ها باور کنم میدونم این به نکته ظریفی اشاره میکنه در حوزه عرفان که افراد عادی نمیدونن توجه فرمودید مولوی همین نکته را گفته اشو داد که من در بی نیستم بس کن آخر بس کن آخر روستایی نیستم بیت بعدش دقیق یادم نیست ولی اهل ادب ببخشن. مضمونش اینه چون به من گویی که در بند جدایی نیستم. من می دونم این آدم اهل فنبه باشه اینا را نمیتونه بگه. من وقتی آثار علا و سمنانی را می و آثار ابن عربی را می میدونم می دونم اینا فرق دارن. اگرچه اینها با هم درگیرند ولی میدونم که این علاو دولت به عمق ابن عربی نیست این دوتا با هم بحث فرق میکنه. شما قاطی نکنید حالا سوال بعدی تو سوال بعدی سوال بعدی اینکه که پس نتیجه می توان گرفت که اهل فن ابزار سنجش دارن دارن که میتونن توانن تشکست بله, بله. بله میتونن ابزاری <تصفح> بگن که این نکته را این شهود واقعی است یا نیست وحی نیست یا نه این نکته را فهمیده حالا در چه مرتبه‌ای باز اون رسیدنش به ما قابل قبول نیست ولی خب این شهود را فهمیده این نکته را فهمیده بعض وقت تصادفی میاد به زبان. ابزار اهل ابزار اجازه بده و... این من نمیگم که تمام او میگن قابل بیان نیست حالا شما میخواید من بگم قابل بیانی منم نمیتونم بگم تمام او میگن ها. یک نفر در غرب و شرق یک نفر پیدا نمیکنه کنه بگن تجربه های قابل بیانه ببینید فرق داره که من تجربه هم رابطه منتقل کنم یا یه نو... نکته زریفی در عرفان هست که ببینید در شهر من اون آمده این زوغیه خب الان هرچی بگید خب این زوغیه زوغ پس روشمند نیست پس از روشمند نیست نه ولی من علاقه که نام اینا رو عرفان نذاریم چرا؟ میگم عرفان قاطی میکنه به اون یکی ها چرا اینه؟ من میگم حتی نام مرزا جواد آقا ملیکی تبریزی امثال اللامه مرحوم را ما صوفی نزاریم، آرف نزاریم، اینا قدیم به اینا چی میگفتن؟ ام. میگفتن عالم الهی، توجه فرمودید؟ عالم آلم الهی و عناوین دیگر ما چی اصرار دارد که بگیم اینا آرف بودن، بعد بگیم آرف تو جوری، یه بد یا خوب، اون بدش این خوبشه نه، اینا اهل معنا هستن، عالم معنوی، عالم الهی، الهیون مثلا خداشناسان متوکلان در الوهیت این عنوانهای دیگر من باره ها پیشنهاد کردم ما به اینا الانم به آقایان حتی در حوزه باره ها دشمنرانی ها گفتم که ما این بزرگان را به عنوان صوفی اینا البته صوفی زیاد نام نمیبرن الان ولی همون صوفی با ارفان عارف هیچ فرق نداره منمارید شما از آنیزه کتاب ارفان عملی در دارید فاصله میگیرید نه نه نه عزیز من اجازه بدید ببینید دو بحث داریم توجه کنان یه بحث داوری یه بحث معرفی توجه کردید من در ارفان فلسفه عرفان داوری کردم تجزیه و تحلیل کردم داوری کردم اما در ارفان نظری معرفیه که او رفا اینه میگن اینه میگن در ارفان عملی هم قوائد و مسائل سیر و سلوک را تنظیم کردم بلی. من داوری نکردم ایرفان درسته یه نفر بخواد منازل و سایرین بخوند یا کتاب منو بخوند من سعی کردم به زبان روز بهتر تنظیم کنم در مساهبهی که با تلویزیون داشتید میفرمایید که ما باید قرآن را محور عرفان اسلامی قرار بدیم این جمله شما اس میخواهید فایل صوتی شون بگیم بچه ها دوستان پخش نه کنم. نه من این کار نمی کنم. نه الان آخه فرمودید من نگفتم نه قرارم. من عرفان اگر گفته باشم الان میگم به شما که راضی نیستم این کلمه را بگم را شاید به زبانم آمده ما قرآن را محور معنویات قرار بدیم اگر این معنویات را عرفان مینامی بله قرآن را محور این قرار بده من معتقدم نجات جوانان ما رهایی جامعه ما در پیروی از قرآن کریم و اهل بیت نه پیروی از عرفان ها مثل مرزی از آقایان نیستن که با یک بیت مثنوی میخوان قرآن را یه جوری دیگر معرفی کنند من این روش را قبول نب. قرآن اصله خوب. و به ما هم گفتند و به ما هم گفتند که مواظب باشید فریب نخورید تجروه ها زیادن در کمینن ما محورمان قرآن است و بهترین مروج قرآن و الگوی عمل به قرآن هم اهل بیتند. سلام الله علیه مجموعی حالا هم میخوای اینا اما این عرفان من نوشتم دین با ارفان دوتاست. اما اگر نام دین را هم عرفان میذاری خب بذارنم میذارن خیلی ها. چهار پنج سال قبل من و آیت الله جوادی عمولی الحمول زنده هم است. مهم. خدا سلامت شون کنه. دو دوتایی با هم قرار بود با ما مصاحبه کنن. مصاحبهگرم آقای دکتر محمد رضایی بود. بله. ایشون از آیت الله جوادی پرسیدن ارفان با تصوف یکیه. از نظر من نه. خیلی نگران شدم. ایشون بگه بله. خوشبختانه ایشان به صورت قاطع گفتن نه یکیه دوتا نیست به صورت قاطع خرداد ها در یا مولی یاد داشتی تو روزنان اطلاعات خب باید با اون مساهره مقایسه کنید آقای جوادی اجازه بدی استدلالش همین بود هیچ متنی نداریم در میان متون اید و رفا خوب. که بگن ارفان غیر استصوفه و هیچ متنی نداریم که یکی بگه من صوفی‌ام عارف نیستم یکی بگه من عارفم صوفی نیستم این صورت او آی جوادی‌یامونی. بله، میگم دیگه خ... او باید از خودش بپرسید. نه... من ای میگم این حرف شما نغز تو من میگم من من نمیگم. نمیگم. بحث علمی داریم حتی اجازه من نه. خود او جوادی‌یامونی جو عرفان. بحث علم می‌دارید. آقای جوادی‌یامونی الان هم گفته باشه من نه با اون نظر موافق نیستم آقای جوادی اون محققی به هر اصلا من نظر مخالفه دیگه دیگه. سریح من نظر مخالف ولی من معتقدم آقای جوادی نظرش همونی که اون زمان معتقد که خود شما محقق هستید اجازه بدید آقای جوادی استدلالش مد هیچ متنی نگفته اینا فرق دارند راست هم نگفته و حتی ذکرش آمد که آقای متحری گفته این عنوان اجتماعی شونه اون عنوان فرهنگی شونه یعنی هردو دو ایشون گفت این هم چیز ذوقی ایشونه و ایلا یه مبنای اینجوری ندارد که ما الان بگیم بر اساس این مبنای این قراردادی بستیم که در فرهنگ اینجور بگیم در مثلا اجتماع اینجور بگیم یک ایرادی که میکنن این هستش که شما این یکسان انگاری که میکنید ریشه در آرای مستشریقین قرن نوزهومی داره مستشریقین قرن نوزهوم هم اومدن گفتن که ریشه عرفان اسلامی به عرفان های شرقی به عرفان های هندی میرسه پالمر تو کتاب عرفان شرقیش همین ادعا رو کرده بود نه سوال و اشکال منتقدین خوب. این هست حالا من اگر بگم دو, دو تا ا... چهار تا آره. اشکال تر بکنم ای یعنی؟ چین. مثلاً چی میشه؟ اشکال تحرف بکنم یا نه؟ اش... اش... اش... چی اشکال تحرف بکنم بله، جواب بدم ولی بله من یکی از مشکلات جامعه های اسلامی رو همین میدونم باره ها تحریف بله کردم نظر مستشریقان تحریف میتونم نظر مستشریقان نیست این نظر مطالعه خودم مستشرق بیش از من نمیتونه وارد باشه من نظر خودم گفتم من چرا میرم به حرف هانری گوش میدم هانری که این اشکالو اسلام, تربو من این اسلام اشکالو تربو کنم این اسلام میدونم هانری کربان که این شیعه میدونه ای اونو. اشکالو تربو کنم یا نه بله خواهش میتونم عرض کنم که شما با یکسان انگاری این عرفان و تصوف عملا بخشی از میرس اسلامی رو منکر میشید به این معنا که کسانی که قایلن از دل دین اسلام ارفان مستقل اسلامی در میاد مبناشون دعای عرفه، مناجات شعبانیه، دعای کمیل، بخشی از این عدیه ماست که امام هم یک شرح خیلی مفصلی امام این داره که در مورد همین مناجات ها و سلوک عرفانی و استفاده های که میشه حضرت علی بهتر از ما هم بر این آثار و متون مسلط هستید بنابراین یک اشکال اینه که چرا شما میایید میراس تصوف رو که یک تاریخ دیگری داره با میراث عرفان اسلامی که همین آیه جوادی آمولی علام جفری که فرم اینها هم در آثارشون علام جفری بحث عرفان قرآنی رو طرح میکنه که حضرت علی شد اصلا از زبان خودش شنیده باشید ماها تو آثارش خونده باشین شما میاید با این یکسان انگاری تمام این میراث رو نابود میکنید نابود میکنید من توه میکنم از اینکه نابود کنم من میخوام بگم جواب شما به این منتقدون چی من این من میگم میکنم. من اینجور میفهمم اگر ام. قرار باشه مقلد باشم از شما تقلید میکنم تا معارف ما ویران نشه شاید در آینده به نتیجه برسم معتقد بشم ولی من به شیفتوسی توسی نه بود نه استراح عارف نه وحدت وجود را داشت آقای مکارم هر که معتقد به وحدت وجود بشه کافر میدونست نجس میدونست علمای ما اکثرا اینا را تختیع کردن و من حساب امام و مرحوم تبا طبع تبایی و حاج مرزا جواد ملکی را اینا را جدا می از این حساب ها. ایشون مردان خدا بودن و اهل حق و حقیقت بودن هیچ ربطی به این عرفان و تصوف و مولوی و ابن عربی ندارن ای ای ای ای ای الان مرحوم, امام, امام. امام, مرحوم امام. امام به فسوس هاشیه نوشته در اون هاشیهش خودش به اون تفسیرهای اعتراض کرده که اون تفسیرهایی که ایشون از آی... آیات قرآن کرده ببینید مثلا حضرت موسی به هارون میگه تو چیکار داشتی با سامیری مگر موسی خدا نیست با امام خوب... هم نظرید امام امام مدرس و استاد بزرگ عرفان و فلسفه است ولی یک موحد کامل و یک متشری جواهریه امام کسی را به ریاضت دعوت نکرده همه را از همق دعوت کرده به اسلام امر کنند اما خب از اسطلاحات اونا هم استفاده کرده کتاب اونا رو هم شهر کرده حساب اینا رو من متقدم از این حساب او و صوفیه رسمی جدا کنید بله چما فرموندید که امام از مردان خداست و ردیه بر صوفیه نوشته، بله ما میدونیم امام بر تعلیقات نوشته بر فوس و سلحکم ابن عربی اونجا اعتراض کردی، حتی نامه داره به یکی از بستگانش اونجا اشاره میکنه که نمیتونیم با ابن عربی مراتب حقیقت و صلوک و شهود و تی بکنیم این انتقادات رو ما میدونیم حتی امام من اینجوری که یادمه توی دیوانش یک شعری داره که هرگز از این صوفیان وفا ندیدم این درست به لفتران نظرش محترمه اما دلخلان. در تفسیر سوره هم سفری 192 و 193 میشه مخاطبان ما که میخوان مراجعه بکنن امام میفرمین که عرفا و فلسفه همه یک مطلب میگوین تعبیرات مختلفه است و نباید این برکات رو از مردم دور خب کرد خب نگیریم من منم معتقدم همه به دنبال حق و حقیقت هم و حتی اینا خودشونم معتقدن حالا اگر امام مثلا نظری دارد من از دل ایشون خبر ندارم که ولی اونی که مسلمی ایشون در این خطه به عنوان یک محقق دارد. آیا ای من در باره ایشون مجبوره تو این دورهای دوست داره فعالیت آقا من درباره ایشون بله. میخوای بعد از این تحقیق کنم نظرت چیه؟ حالا من بالای بله ای تحقیق بفروشم بله. که باید من الان خانم... شما ایشون رو پرسیدی. بله. اصلا ایشون نپرسی. نه من فقط یه پیشنهادی دیگر را بهتون میگم. شما... بگو آقا فلان کس ایران ایران را قبول داری حالا. یا نه؟ من اصلا حتی قطب ایرفان باشی یه نفر دکتر نوروخش را بپر من چی میدونم تو دلش قبول داری شاید در دلش او از من مونکرتره من یه دفعه یه نفر دستم را گرفت رفتیم خانومم دو ماه بعد که از من خبر نداشت عکس منه میخواست بده روزنامه من رسیدم خونه که عنوان گم شده به داخره اوالمی بودیم الان هم تشخیص میدم به صلاح جامعه نیست به صلاح جوانان نیست. به صلاح معارف اسلامی نیست ما یه مقدار برگردیم به قرآن ام. و من در این باره مرحوم اللامه هم در کل قرآنش میدونی چی گفته در مقدمه تفسیرش چی میگه راجی بیرفان شون جواب منو بدید نه ارزو میکنم من حالا همین رو میگم میگه جز به تفسیر برعی هاست پیشنهادی که دارم اینه که این جلد 21 صحیف امام صفحه 11 رو بخونید امام از اسلام عارفان مبارز جو اسلام پاکتینتان عارف اسلام فابرهنگان زمین اسلام رنجدیدگان تاریخ اسلام موسس افین و در یک کلمه اون تعبیری که شما فرمودید به زیبایی هم فرمودید اسلام ناب صحبت می‌کنه بنابراین حالا اگر خاصیت درقیقوتتون این رو هم در نظر بگیرید این بحثی که امام اصلا قرائتش از امام اسلام رو من خوب می‌شناسم امام الگوی ما بود در دوران جوانیمون به ما صداقت یاد میداد شجاعت یاد میداد من امام را از حضور دیدم بارهاو خانه شان رفته ام اصفار را که یه زمان تدریس می‌کرده در جوانیش تا آخر عمرش اصول اون را اساسی جدی و برحق دانسته خب ایشون آزاده من که با ایشون اجبار نمی‌کنم و شاید ایشون راست میگن نظر این در نظر ابن سینا یه نظر میده سهروردی یه نظر ممکن ابن سینا یه جای اختلافه اینه که من و ابن سینا اینطوری ابن سینا یه چیز میگه سوره یه چیز میگه من یه چیز میگم من اون مرحوم تبا که استادمه خیلی هم دوستش دارم و جاها موافق دیدگاهشون نیستم اون یه مکتبه این یه مکتبه این مال خودش داره اون مال خودش داره معنویت در قرآن یه حسابی داره عبودیت یه حسابی داره در دیدگاه‌های نو افلاطونی این دیگه حساب دیگر داره ما با این عقاید قاطی نکنیم بله بل قاطی نکنیم پس اینجوریه که قاطی دید... کرد هر کس من معتقدم قاطی نکنیم اما شما معتقدی قاطی کنیم خوبه منو که اصلا بحث راه به حال کسی را من, من نجم... مثل بعضی از آقایان نیستم که فوری حکم مدم به کفرش من تا به حال کسی را تکفیر نکردم از کسی به خاطر این ایراد نگرفتم هنوزم من علاقه دارم به ارفا، هنوز به آثار ارفا علاقه دارم ولی کار تحقیقی غیر از علاقه است من دوست دارم ولی حقیقت را به خاطر این دوستی ها فدا نمی کنم من هنوزم از یک قذر ایرفانی لذتی می برم فوق تصور و عشق در چشمم جمع می شه. اما این طیل از که در اینها اون چرا که می فهمم به زبان نیارم. ملک سخن به مملکت جمع نمیدهم یک بیت عاشقانه به عالم نمیدهم اما شما بگو آقا عاشقانه باشیم یا مسلمان جواهری باشیم. من میگو مسلمان جواهری باشیم. این به صلاح جامعی مست. و همین الان چندی پیش ام. یک جا یه حمله کرده بودن که ما باید عرفان را با ترویج کنیم که از فقه راحت بشیم. من یه مقاله مفصلی نوشتم تو این مجازی هم پخش شد که آقا شما از یک فضای زیبا فرار میکنید به یک فضای رنجابر. در اسلام نبی اکرمش سلام الله علیه. حاضر نبود از جلو پایش بلند شد ولی در ارفان قد خداست. تصریح میکنه ابن عربی که قطب و خلیفه تمام صفات الهی را دارد فقط یه فرق دارد اون, اون چرا عرفان تقلیل میدید فقط ابن عربی اون واجبه شما چرا ارفان را تقلیل میکنید فقط به یه نفر خب میگم من این ارفان اصلش اینان اینا ادعاش من مولوی شما مولوی را ندانی شما ابن عربی را می‌خواید عارف ندانی خب یکی از مباحث ای که در اندیشه شما مطرح میشه اینه که شما درکی که مصیبتاتون فرمودید مون در 200 سال گذشته فیلسوف نداشتیم و امروز هم فیلسوف نداریم دلیل اینکه اصولا جامعه ایرانی نتونسته فیلسوف ترور باشه و به این حوزه نزدیک بشه چی جامعه ایرانی که الان شاید دو هزار فیلسوف پرورش داده این همه رشته های فلسفه چه فلسفه غرب چه فلسفه شرق اسلامی اما من معتقدم اون فیلسوفی که فیلسوف زمان خود باشه و هر سخن جدید طرح جدید افق جدید در پیش رو داشته باشه و به مردم معرفی کنه ما منتظر اونیم ما آدم داریم 50 سا هفتاد سال تدریس میکنیم ولی یه نظر نداره. یه نظر نداره. اگر سراغ داری بیا بگو. یعنی همه اینها استاد هم فلسفه بیاد من حتی تو کتابم نوشتم. مرحوم علامه روش رئالیسم را فارسی هم نوشتن. عربی نیست، ببین خیل خیلی خیليا نمیدونن. ولی هنوز در کل دانشگاه های ما یه نقد به اون نوشته نشده بله. مرحوم علامه که معصوم نبود بله. این همه هم استاد فلسفه غرب داریم شروع داریم بله. خب این شاید من مبالغه کردم و شاید اشتباه کردم اما این به کجا برمیخوره من عقیدم اینه خدا کنه داشته باشیم و من اشتباه کرده باشم اینه در مورد عقیدتون قائل به این هستید که باید کند و بشه چون و چرا بشه و مباحثه بشه من به قبر کافی چهر سال یه ماه در میان همین از دوستان بودم. مثلا از مرحوم علامه مطالبی داریم جدید. سبکی داریم جدید. ولی خیلی هستن یک عمر از اینجا دویدم به اونجا. ده جا تدریس کردند. شمار موهای سر شما و من رهنمایی رساله پذیرفتن. اما کدام نظریه را بودن؟ الانم بعضی ها میگن دولت نمیذاره. من میگم آقا دولت الان بود جمعیده به تولید علم به نظریه پردازی اما خب ما نمیتونیم بکنیم دیگر چیه؟ اگرم چیه؟ اگر هم نظریه دادن بعضیا یه جور نظریه هاییست فقط اپوزیسیونیه ها. یه حرفی بزنیم که مثلا روحانیون ناراحت میشن یا اون یکی این یکی اینا را هم شما من دردم. حالا تعریف نظریه اپوزیسیونی را تو کار شما میبینم میبینید چرا شما اتفاق نسبت به کل تاریخ عرفان و فلسفه اوپوزیسیون هستید ارفان رد میکنید دویست سال ما فیلسوف نداشتیم برد. تولید برد. علم نداشتیم شما دا... من, من خودم کارتره. با شما من دعا میکنم شما معامین بگو من دعا میکنم که حرف من اشتباه باشه چون هر بشری محل خطا و نسیانه و میلیون ها فیلسوف داشته باشیم که من خبر نداشته باشم من نمیگم همچین دعای نکردم من درم میگم شما که دیگران من از, از دیرسوف دی برای... م... که 500 صفحه کتاب نمیشتم که ما روشن فکر نداشتیم هاشی انویسی زیاد بوده تحلیق نویسی زیاد بوده نقده های هاشیه زیاد بوده ولی از نوع تحلیل های من و نقدهای های من من کم دیدم یا ندیدم توجه کردید این ادعای منه دیر از اینه من یک احتمال نه است. 99 درصد احتمال میدم اشتباه کرده باشم و دوچار غرور شده باشم. لطفا از نقدهای بنیادی اسادید معاصر و گذشته بر فلسفه اسلامی بیارید. غیر از اونایی که همه میدونیم مثلا سهروردی بر تعریف بشراین ایراد داره سهروردی بر ترکیبی جسم از حیولا و صورت ایراد داره و تازه حرفای خود سهروردی در اونا ضعیفتر ایراد داره و اینا رو نه ولی از این معاصرین الحمدلله درد سر این را هم من میکشم و محت... مشکلاتش هم من تحمل می ولی این کار را فقط منم در میدان شما یه نفر بیار تاریخ تحلیلی نمیشته باشه مقایسه کرده باشه بحث ایلریتی مولا صدرارا را با تمام سوابقش تاهرم شد یکی از ایراداتی که به فلسفه امروز کرده بودید این بود که ما در گزشتگان و بحث های موندیم و هی رفتیم بحث های تکراری گزشته را انجام این درسته این درسته من میگم ما نباید همش اش بگیم مولا چی گفت قبل از منم شمس تبریزی یکی گفت جونید اینطور گفته یکی گفت بایزید شمای که مردان این روزی قادید که حرفتون شما میدانید اگر من به جای نقد ایرفان ادعای ایرفان میکردم الان چه محبوبیتی داشتم چون یه موقع ادعای ایرفان داشتید نقدیانه در قوم هم در, در آنیش رو تفریل کردید محبوبیت داشتم ولی من به خاطر حق و حقیقت از خیر همه چیز گذاشتم همراهی نکردم با ادعای من حتی از دعوت به این مجامع تحقیقاتی محرومم کردن نه مقامات بالا من از مقام ملزم رهبری جز تشویق و جز محبت نشنیدم از رؤسای جمهور حالا هر کدام باشن جز محبت و تشویق نشنیدم نه تشویق مالی صحبتی آمده ازار لطف کردن اما از می مدیران میانی همیشه میترسن که من تند روی کنم به اونا بد باشه. بگن این از کجا پیدا کردی آوردی؟ و از همکارانم گیرمندم. من چرا باید در انجمن فلسفه نظریاتم را نگم و این آقایان جواب ندن؟ چی مشکلی پیش میاد؟ من چرا باید در فرهنگستان علوم حضور نداشته باشم؟ چرا؟ چون از نامشک آزاد انتقاد کردم؟ به پونک نرفتم یا مثلا چون از فلان آقا گفتم چون تو رئیس فلان مرکز بزرگی حیف وقت تهدر ته کنی بیای در فلان شعبه دانشگاه ازاد مدیر گروه بشی برو کار اصلیت بکن یه رئیس جمهور بریکت خدای شاب از این بشه این زشته و من را رو از روک راست گفتم و توکلم بر خدا بوده و توسلم بر جدم و اجداد تاهین هم سلوات الله علیه اجمعین بوده و بس و تا زنده هستم جز خدمت بدین و حقیقت هدفی ندارم نه مال دنیا نه جاه دنیا تازه از همه اینا گذشتیم یاد شما ولی، این رو هم بد که حتی به خاطر این کاره اپارتمانه... و در واقع اون رو مرگ من اتفاوا مرگ من نگو رو باید گفت اتفاقه اون رو شاید من, ات... من د... یه نکته به شما بگم در من مورد من هر انتقادی من من که در مورد ولی من شما داشته باشین در مورد از... عرضش کار شما و جدوجهتی که در آخرم بذار این نکته بل... را بگم حالا که شما میگه بگو. اینی بگم من از دوستان برای رفع شبه اینه میگم منو با جمعیتی که به نام اهل تفکیک مکتب تفکیک معروفم و به بعضیشون ارادت هم دارم هم همعقیده ندانید شما نه در منشت با آقای سیدان دیدار داشتید با ما با هم عقیده ایم آقای سیدان با هم نه نه, نه آقای موسیم زبتم شده بیارم. شما به من نسبت اینجوری ندید ببینید زبتم شده تو هزار بارم گفتم من گفتم ما در سه چیز شباهت داریم اینا جنبه‌ی ظاهری دارن ولی در سه چیز اصلی با هم اختلاف داریم که یکیش اینه شما ها هستن با کل فلسفه مخالفید. من میخوام فلسفه امروزمون را داشته باشیم. فلسفه رشد کنه. یعنی شما پس اون روایتی که دیدار شما با سیدان هست و من خودم ده جا نقل کردم. از جمعه‌ای طرفناک نقل کردم. بحلی. تو مطبوعات نقل بحلی. کردم. که گفتم باید. دعوت فرمودن خیلیم محبت باید. کردن من مهمان دانشگاه فردوسی بودم یا دعوت کردن من شب رفتم چند نفرم از علمای شر دعوت فرمودن من تشکر می کنم. همیشه از محبت ها و مساعدت هایشونم بهرمن بودم شب زبت و فیلم هم آماده کردن به من لطف کردن که خواستن من صحبت کنم من حدود یک ساعت یک ساعت و نیم صحبت کردم و گفتم من اینی میگم اینی میگم و ایشون بعد از من یک ساعت صحبت کردن گفتن از غذا اون جاهایی که شما با ما اختلاف داری من معتقدم که با شما ما اختلاف نداریم خوب؟ از بعضی منابع هم به من نقل کرد و نشان داد ولی من همچنان معتقدم که اختلاف داریم، فرق داریم. من وروده اختلاف کمی یا زیاد بین شما و اساسی ترین معنا اینی که من معتقدم اونا میخوان فلسفه نباشه و من می‌خوام فلسفه باشه کاملتر و قوی‌تر. من اختلاف فلسفه به اقتصاد نظر بده، به سیاست نظر بده. به جامعه نظر بده، به ازدواج نظر بده. من خیلی بده. به اتیار اتیار کردید چون به یاد نور ده. که عملا این کار را می‌کنم. حالا یه سوال جزئی بپرسیم. موارد اختلاف بین شما و تفکیکیا اساسیه یا کمی؟ اساسیه. پس حداقل این رو هم ببینید، این مصاحبه شما. ولی نه هم کجا بخوام، دیگه رضا و مکتب تفکیک گفتگو با سیدی احیا یسروی. یسروی بله موارد اختلاف. بین شما و اهل تفکیک به چه ننفس بله آیا در نهایت بین فلسفه و مکتب تفکیک یا به بیان بهتر بین برداشت شما و آقایان اهل تفکیک اختلافی هست یا نه شما فرمودید سوال شما کاملا درست و بر حق است اگر این سوالان نمیپرسیدید مباحث ناقص می ماند راستش هنوز هم برای خودم روشن نشده است ولی به نظرم موارد اختلاف خیلی کم است. نه اینا دم بال من نیست. بنابراین ما مال من، چون الان من زنده هم آره. آره. بگه و, برمشن... و اون تره سوالشم میدید چقدر ناشیانه است چون که سوال خوبیه که اینجا شو... بهش نه، اونجا حضوری گفتم، این بعدا رفته گزارش نوشته نه، این گفتگوه این گزارش گزارش گفتگوه، نمشه. بابا گفتگو با من حرف زده یادداش کرده بعد رفته پیاده کرده خ... این قدریم پیش میاد، میان با من مصابه میکنن منم نمیگیرم دوباره بیراش کنم ولی بعض من به فرستن. نظرم انتفاقا بگیر اینجایش کنید که دستیارم به من میگه فلانی اصلا تو اینجور نگفتی صد موردم اینجوری باشه خوب اشتباهه دیگه من اینجا زنده هم غیر از اینم مکتوبی که خودم ویرایش کردم آبتر اندیشه طرفناکه شما نگاه کنون چی گفتم اون مورد را گفتم این مورد را هم گفتم بهلی. غیر از اون در مصاحبه‌های های گفتم ایگه مورد حالا این گزارش شهر درست گزارش نه مورد نه دیگه من این مواردی که نه موارد به این مربوط نیست به تفکیک مربوط نیست هم. نه مواردی در مورد عرفان هم بود بابا در مورد ارفان که من, من, من امرو توضیح دادم بله بله بله بله کردی گزارش مطبوعاتی اون نه در دیدم که موردی را من رد نکردم بله اونایی که براتون اگر یه جا گفته باشه فلانه میگه تشوخ تیر از عرفانه اون من حتما نگفتم بله بسیار چون ننوشته ننویشتاها میگه یکی نیستن یکی آن نه هیچ جا چرا اون روز مگر بیهوش بوده باشه منو بگم مثلا الان ممکنه یه جایی بنویسه فلان میگه عرفان عالی ترین چیزیه و بهتر از فلسفه هستم خب من دیگه واضح هم معلومه شما از بین این کتاب ها من... یک دونه رو به کتابخانه شوکران انتخاب کنید اون کتابی که بیشتر از همه دوست دارید رو یک دونه شو من چون اینه ندارم اینه بیشتر آره دوست دارم این تجربه قرآنم را ولی اینه چون ندارم تفسیر این تفسیرم را اینجا نکنم من نمی بینم بدون زر روین اینا ولی خ شباهی میبینم مینویسم بسمه تعالا تقدیم به کتابخانه شوکران. شوکران با آرزوی شادکامی شادکامی همکاران خیلی محبت که سید یحیی یسریبی دستشوان حالا اینگر مثلا یه نفر بگی فلانی گفته من دهاتی نیستم این گفتر من تاکسید میکنم خیلی محبت